مصنوی معنوی مولوی برنامه 159 ادامه لا کردن موش مرچغز را جاوق جاوق اسپاه تصویرات ما سوی چشمه دل شتابان از زما جره ها پر می کنند و می روند، دائمان پیدا و پنهان می شوند. فکرها را اختران چرخ دان، دائرن در چرخ دیگر آسمان. صد دیدی شکر کن، ایثار کن، ناس دیدی صدق و استغفار کن. ما کیم این را بیا ای شاه من تاله مقبل کن و چرخه بزن روح را تابان کن از انبار ما ز آسیب زنب جان شد سیاه از خیال و وهم و زن بازش از چه و جور رسن بازش تازه دلداری خوب تو دله، پربرارد برپرد زاب و گله. ای عزیز مصر و در پیمان درست، یوسف مظلوم در زندان توست. در خلاص او یکی خواب ببین. زود کلاه یوهب بل محسنین هفت گاو لاغری پرگزند هفت گاو فربهش را میخورند، هفت خوشی خشک زشت ناپسند سنبولات تازهش را می چرند قهت از مصرش برآمد، آمد ای عزیز هین ما ای شاه این را مستجیز یوسفم در حبس تو ای شه نشان هین زدستان زنانم وارهان از سوی عرش که بودم مربت او شهوت مادر فگندم که بتو تو پس فتادم زن کمال مستتم از فن زالی به زندان رحم روح را از عرش آرد در حتیم لاجرم کید زنان باشد عظیم اول و آخر حبوت من ز زن چون که بودم روح و چون گشتم بدن بشنو این زاری یوسف در اصار یا بران یعقوب بیدل رحم آر ناله از اخوان کنم یا از زنان که فگندندم چو آدم از جنان زان مثال برگدی پج که از بهشت وصل گندم خوردم چون بیدیدم لطف و اکرام ترا ونسلام سلام و سلم و پیغام تو را من سپند از چشم بد کردم پدید در سپندم نیز چشم بد رسید دافع هر چشم بد از پیش و پس چشمهای پرخمار توست و بس چشم بد را چشم نیکویت شها ماتو مستعصل کند، نی مدبا. بلزه چشمت کیمیاها می رسد. چشم بد را چشم نیکو می کند. چشم شهر بر چشم باز دل زده است. چشم بازش سخت با همت شده است. تا زبس همت که یا از نظر می نگیرد باز شه جز شیر نر. شیر چه کنشاه باز معنوی هم شکار توست و هم سعیدش تویی؟ شد سفیر باز جان در مرج دین ناره لا احب بل آفلین باز دل را که پی تو می پرید، از عطای به هدت چشم رسید یافت بینی بوی و گوش از تو سما هر حس را قسمت آمد مشا هر حس را چوندهی رح سوی غیب نبود آن حس را فطور مرگ و مالک الملکی به حس چیز دهی تا که بر حس ها کند آن حس شهی. حکایت شب دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد که من یکی از شما و بر احوال ایشان متعله شدن الى آخر. شب چو محمود بر میگشت فرد با گروه قوم دزدان باز خورد. پس بگفتندش کی؟ ای بلوفا، گفت شه من هم یکیم از شما. آن یکی گفت ای گروه مکرکش، تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش. تا بگوید با حریفان در سمر، کوچه دارد در جبلت از هنر. آن یکی گفت ای گروه فنفروش هست خاصیت مرا اندر دو گوش که بدانم سگ چه میگوید گوید با بانگ قام گفتندش ز دیناری دو دانگ. آن دیگر گفت ای گروه زرپرست جمله خاصیت مرا چشمندر است. هر را شب بینم اندر خیروان روز بشناسم منو را گمان. گفت یک خاصیتم در بازو است که زنم من نقبها بازور دست. گفت یک خاصیتم در بینی است. کار من در خاکها بوبینی است. سر اناس و معادن داد دست که رسولان را پی چه گفته است من ز خاک تن بدانم کندران چند نقد است و چه دارد او ز کان در یکیکان ایک زر به اندازه درج و داخلش دخلش بوید کمتر ز خرج همچون مجنون بوکنم من خاک را خاک لیلی را بیابم بی خطا بوکنم دانم زهر پیراهن گربود یوسف وگر آهرمنه همچو احمد که برد بوی از یمن زان نصیب یافت این بینی من که کدامین خاک همسایه زر است یا کدامین خاک صفر و ابتر است گفت یک نک خاصیت در پنجم همچو احمد که کمند انداخت جانش تا کمندش برد سوی آسمانش گفت حقش ای کمند انداز بیت آن زمندان مارمیت از رمیت. پس بپرسیدند زانشه کی سند مرترا خاصیت اندر چه بود گفت در ریشم بود خاصیتم که رهانم مجرمان را از نقم، مجرمان را چون با جلادان دهند، چون بجن بد ریش من ایشان رهند. چون بجن با آنم بر رحمت ریش را طی کنند آن قتل و آن تشویش را. قام گفتندش که خود به ما تویی که خلاص روز مهنت مان شبی. بعد از آن جمله به هم بیرون شدند. سوی قصر آن شاه میمون شدند چون سگ بانگی بزد از سوی راست گفت میگوید که سلطان با شماست خاک بو کرداندگر از ریوهی گفت این هست از وساق بیوهی پس کمند انداخت استاد کمند تا شدند آن سوی دیوار بلند جای دیگر خاک را چون بوی کرد گفت خاک مخزن شاهی است فرد نقبزن زن زد نقب و در مخزن رسید هر یکی از مخزن اسباب کشید بس زر و زربفت و گوهرهای زفت قام بردند و نهان کردند تفت شه معین دید منزلگاهشان، هلیه و نام و پناه و راهشان، خیش را دزدید از ایشان، بازگشت، روز در دیوان بگفت، آن سرگذشت. پس ربان گشتند، سرهنگان مست، تا که دزدان را گرفتند و ببست. دست بسته سوی دیوان آمدند، و از نهیب جان خود لرزان شدند. چون که استادند پیش تخت شاه، یار شبشان بود آن شاه چماه. آن که چشمش شب به هر کنداختی روز دیدی بیشکش بشناختی، شاه را بر تخت دید و گفت این بود با ما دوش شبگرد و قریند، آن که چندین خاصیت در ریش اوست، این گرفت ما هم از تفتیش اوست عارف شه بود چشمش لاجرم برگشاد از معرفت لب با حشم گفت و معکم این شاه بود فعل ما میدید و سرمان میشنود چشم من ره برد شب شه را شناخت جمله شب با روی ماهش عشق باخت امت خود را بخواهم من از او کو نگرداند ز عارف هیچ رو چشم عارف دان امان هر دو که بدو یابید هر بهرام آن زان محمد شافع هر داغ بود که ز جز حق چشم او مازاغ بود در شب دنیا که محجوب است، شاید نظر حق بود و زو بودش امید. از علم نشره دو چشمش سرمه یافت، دید آنچه چه آن بر نتافت. مریتیمی را که سرمه حق کشد، گردد و در یتیم بارشد. نور او بر درها غالب شود، آنچنان مطلوب را طالب شود در نظر بودش مقامات العباد لاجرم نامش خدا شاهد نهاد آلت شاهد زبان و چشم تیز که ز شبخیزش ندارد سر گریز گر هزاران مدعی سربرزند گوش قاضی جانب شاهد کند قاضیان را در حکومت این فن است شاهد را دو چشم روشن است گفته شاهد زان به جای دیده است کو به دیده بی‌غرض سر دیده است مدعی دیده است اما با غرض پرده باشد دیده دل را غرض حق همه خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی کین غرزها پرده دیده بود بر نظر چون پرده پیچیده بود پس نبیند جمله را با تم و رم حبک و یعمی و یسم در دلش خورشید چون نور نشاند پیشش اختر را مقادیر نماند پس بدید و بهجاب اسرار را سیر روح مؤمن و کفار را در زمین حق را و در چرخ سمی نیست پنهانتر ز روح آدمی باز کرد از رتب و یابس حق نورد روح را من امر ربی مار کرد پس آن روح را چشم عزیز پس بر او پنهان نماند هیچ چیز شاهد مطلق بود در هر نزاع بشکند گفتش خمار هر صدا نام حق عدل است و شاهد آن اوست شاهد عدل است زین رو چشم دوست منظر حق دل بود در دو سرا که نظر در شاهد آید شاه را عشق حق و سر شاهد بازیش بود مایه جمله پردسازیش پس از آن لولاک گفتن در لقا در شب معراج شاهد باز ما این قضا بر نیک و بد حاکم بود بر قضا شاهد نه حاکم می شود شد اسیر آن قضا میر قضا شاد باش ای چشم تیز مرتضا عارف از معروف بس درخواست کرد که رقیب ما تو اندر گرم و سرد ای مشیر ما تو اندر خیر و شر از اشارات هات دل من خبر ای یرانا لا نراه و روز و شب چشم بند ما شده دید سبب چشم من از چشم ها بگزیده شد تا که در شب آفتابم دیده شد. لطف معروف تو بود آن عیبهی پس کمال البر فی اتمامهی. یاره بتمم نوران فی ساهره و انجنامن مفزحات قاهره. یار شب را روز محجوری مده. جان قربت دیده را دوری مده بود تو مرگ است با درد و نکال خاصه بودی که بعد بعدل وسال. آنکه دیدستت مکن نادیدش آب زن بر سبزه بالیدش من نکردم لا ابالی در روش تو مکن هم لا ابالی در خلش هین مران از روی خود او را بعید آنکه او یک بار آن روی تو دید دید روی جز تو شد غل گلو کل شیء ما سو باطل و می نمایندم رشد زانکه باطل باطلان را می کشد ذره ذره کندرین ارز و سماست جنس خود را هر یکی چون کهرباست معده نان را می کشد تا مستقر می کشد مرآب را تف جگر چشم جذاب بطن زین کوی ها مغز جویان از گلستان بوی ها زان که حس چشم آمد رنگ کش مغز و بینی می کشد بوهای خوش زین کشش ها ای خدای رازدان تو به جذب لطف خودمان ده امان غالبی بر جازبان ای مشتری شاید در درماندگان را واخری رو به بشه آورد چون تشنه به ابر، آن که بودن در شب قدر آن بعد چون لسان و جان او بود آن او آن او با او بود گستاخ گو گفت ما گشتیم چون جان بند تین آفتاب جان تویی در یوم دین وقت آن شد ای شه مکتوم سیر کز کرم ریشه به جنبانی به خیر هر یکی خاصیت خود را نمود آن هنرها جمله بدبختی فزود آن هنرها گردن ما را ببست زان مناسب سرنگون ساریم و پست آن هنر فی جیدنا مسد روز مردن نیست زان فنها مدد جز همان خاصیت آن خوش هواس که به شب بود چشم او سلطانشناس آن هنرها جمله غول راه بود غیر چشم کو شه آگاه بود. شاه را شرم از وی آمد روز بار که به شب بر روی شه بودش نزار. وان سگ آگاه از شاه وداد خود سگ کهفش لقب باید نهاد. خاصیت در گوش هم نیکو بود کو به با بانگ سگ ز شیر آگاه شود. سگ چو بیدار است شب، چون پاسبان بی خبر نبود ز شب شهان، هین ز بدنامان نباید ننگ داشت هوش بر اسرارشان باید گماشت هر که او یک بار خود بدنام شد خود نباید نام جستو خام شد ای بسا زر که سیهتابش کنند تا شود ایمن، ز تاراج و گزند قصه آن که گاو بحری گوهر کاویان از قهر دریا برآورد. شب بر ساحل دریان هد، در دورخش و تاب آن میچرد. بازرگان از کمین برون آید چون گاو از گوهر دورتر رفته باشد. بازرگان به لجم و گل تیره گوهر را بپوشاند و بر درخت گریزد. گاو آبی گوهر از بهر آورد حد اندر مرج و گردش میچرد در شعاع نور گوهر گاو آب می چرد از سنبل و سوسن شتاب زان فگنده گاو آبی انبر است که غذایش نرگس و نیلوفر است هر که باشد قوت او نور جلال، چون نزاید از لبش سهر حلال، هر که چون زنبور وحیستش نفل، چون نباشد خانه او پر پراصل، میچرد در نور گوهر آن بقر، ناگهان گردد ز گوهر دورتر، تاجر بردر نهد لجم سیاه تا شود تاریک مرج و سبزگاه پس گریزد مرد تاجر بر درخت گاو جویان مرد را با شاخ سخت بیست بار آن گاو تازد گرد مرج تا کند آن خسم را در شاخ درج چون از او نومید گردد گاو نر، آید آنجا که نهاده بود گوهر. لجم بیند فوق در شاهوار، پس تین بگریزد و ابلیسوار. کانبلیس از متن تین کورو کر است، گاو که که در گل گوهر است، احبتو افگند جان را در حزیز از نمازش کرد محروم این محیز ای رفیقان زین مقیل و زن مقال اتقو ان هوا حیز و رجال احبتو افگند جان را در بدن تا بگل پنهان بود در عدن. تاجرش داند ولیکن گاو نی. اهل دل دانند و هر گل کاو نی. هر گل کندر دل او گوهر است. گوهرش غماز تین دیگر است. وان گل کزرش حق نور نیافت، صحبت گلهای پردر بر نتافت، این سخن پایان ندارد، موش ما هست بر لبهای جو بر گوش ما.